بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الله عالم سیده الله و آله طیبیم بادرین محسومین از رو که اخباری ها دارند اینها ها رو متعرض قبل از این که بازه بحث خبر رو واقع بشین مدنون صاحب وسائل یه مقدار از شواهدی رو در کجیت این کتب مشهور نه و هدف ایشان اینه که بکنن این کتب ثابتن این روایات ثابته البته تعارض هست به تعارض تااروز رو باید بکنیم یعنی وجود تااروز شاهد نیست برای اینکه بعد از این روایات ثابت نیست کلان ثابت هم لكن تعارض هم دارند، تعارض واضح است. بعد ایشون نادر ابن شهراشور فی المناقب اهل الذين راو عن الصادر علیه السلام، سوابق كانوا علی بتعالیم نشون عرف کرده. این مطلب رو دیگه تکرار نمی‌کنم، این مطلب درسته. ابن عقده که یک راوی از و بزرگ، یکی از اخباری موقر ایشون کتابی نوشته در رابطه با ائمه از هر برای که اصلاح بکنه این شخص مثلا از اصحاب امام باخر یه دونه روایت هم مثلا یک کتاب اصحاب مانس از امام باخر در امام صادق چهار ازار مقه کردن با چهار روایت لیکن که محل اشکاله این تعبیر ابن شهراشوبه ان الذین رو انا صادق علیه السلام, من السلام این کلمه سراطه و روشه نداره اشکال سر کلمه ثبات کار و عربعت آزام را شد و قطعا هم خود ابن عقوده این مقدار رو باید در اختیارش خود ابن شهراشو در اختیاریشان نبوده و آن نبنه عقوده ذکره کتاب و ذکره مستردیشون هم کلام ابن عقوده است از کلام ابن عقوده شد نداره چهار حدیث و به اصبات بکنه که این شخصی این از اصحاب ما صده شما ش ععرض کرد این و سکن علمی نیست این روش درست می خود این روش گه روش علمی و منطج نیست. و نظر ابن شهر هاشور باز در کتاب معالم قما ل المفید ان نوقال چند نه تا تل ماامیه و اهد انقیار آممزی. این حواز که مرحوم مشراکو در معالم از گول مرحوم شیخ مفید مرحوم نهاره کرده و کرارا نهاره کردیم در هیچ یک از آثار شیخ مفید فیلن چیچی چیزی نداریم که از عهد عمیر المومنین تا عهد امام محسگید چهار چهارصد تا عرصه بوده از ما به ذهنمون میاد این عدد بالای اصول باید توسط ابن غذابی پسر بخصه شده باشه ما با تأملات چون در این که از آنها ما کلمه‌ی اصول و, و مصندات رو به کار بردن که بحث نیست هم قمی‌ها هم بنده یاد کرارا ارزش اما اینکه اگر گفته بشه 400 نداریم. لکن مرحوم شیخ طوسی منفردان چون معلومات شیخ طوسی راجع به ابن قضاوی کسر که احمد بن حسین خیلی کم از کلام مرحوم شیخ طوسی 408 رو برداد آمده چهارسد و یازده هم ابن قضایری پدر فعود کرده دقت می کنم؟ حالا آیا در این فاصله یه سه سال ابن قضایری پسر فعود کرده اون ما درست نمی دونیم مشکلی که ما الان داریم دقیقا نمی دونیم شکل این عبارت فرس خودش رو کی نوشیه یه عبارتی داره شکل رو در محراز رو ای رسول الله ما سنت اگر مراد در این عباده شیخ فاضل در اول فهرست شیخ مفید باشه اگر مراد باشه با چی حدود 413 14. اینا این کتابو نوشته باشه و در خلال این سه چهار سال احمد بن حسین هم فوت کرده تعبیر شیخی که لان محصور قرایم الله اخترام در اصطلاح لولت عربی نوجوانیه، یعنی مرگ نوجوانی. در سنین جوانی ابن غذایری خوبی کرده ابن غذایری که اسمش احمد ابن ایشون درسته این ازیان محوم نجاشی باید کاملا رفیق بوده چون نجاشی متولد بخداده ایشون هم متولد بخداده از بچگی با هم رفیق بودن بلکه ظاهرا به حتی به هم نجاشی ازشون بزرگتر هم بوده ببارشد شد احمد در حسین بود چون نفیاشیم یه کتاب رو کتاب رو کنم رو پیش احمد ابن حسین اجازه از احمد ابن حسین رو نشون میده که در جوانی با هم بودن لیکن احمد ابن حسین حالا یا چون قدرش بزر مشهور بوده این وقت داره گوه برد العالم یا پدرش شعرت پدر این کار کرده یا واقعا شخصیت علمی بوده از و از مجموعه شواهد در میاد که همسنها و همسالهای مرمون نجاشی باشه لذا کاملا با هم آشنا یعنی مرمون نجاشی با ابن رضایلی پسر به شیخ شیخ در اواخر ایشان به بغداد آمده و از این که شیخ هیچ نامی از ایشان نمیبره معلوم میشه این احمد ابن در اون اواخریه به لفظ بدانی چیزی امانی. یک صحبتی خوبشی بوده راست یا درو که شیخ از اون چیزی نعمل نمی کنه. نجاشی از فرم و حدود 20 تا 20 مورد در کتاب فیلس موجود میگه وقال احمد ازنان حسین وزق رحمد اسم ایشان میبره اما شیخ نمیبره نجاشی هم مستللا متعرضه ایشان نمیشه خیلی هم عجیبه یعنی به ذهن ما میاد که در خواهر حیاتش با یک نوع به اصطلاح ها شایات بوده، برخورد اجتماعی بوده، صحبتی بوده و یک نوع وضع نامناسب اجتماعی برای ایشان پیش آمده بوده یا به خاطر شدت حمله ایشان به خط غلق به اصلاح خود ایشان و اینکه مقدار زیاد زیادی از روایات یا کتب رو میگفتینا نیستن و به طور طبیعی ارزتران در بغداد اون زمان اصطلاح ها محسوسا غلق سیاسی خیلی رواش داشت به خاطر که حکومت دست آلو بود و خلیفه هم خاضر بود و شیعیان خیلی حالت هیجان در بغداد داشتند ایشون ها خلاف این مطالب بود از اون شیعیان اسمایلی خیلی هیجان در نصداشن یک حکومت در داشتن در بغداد هم حکومت نداشتن سلطه داشتند مثلا در حکومت اسمایی در مصر بردار شد اولین در قدی رسمن در اسلام توسط اسماعیلها ها برگزار شد یعنی خلیفه در حدود سال بیستی رسما با عنوان ایده قدیر اما در بغداد سنی بود با آمدن آرگوه اونها هم مجبور کردن خلیفه را ایده رسمی بیرن سال سی سال 10400 و و سال قبل الگوریتم سران 10434 از وقتی که سران الگوریت وارد بغداد شدند 18 سال بعد مجبور شدند خلیفه بغداد رو که سنی بود به اسلام رخصت دین حنیف رو به عنوان حیل اعلام کنند قبل از این به 50 سال تقریبا در مصر اولین بار در مصر بعد از واقعه قدی رسما در دنیای سیاست عراقی من میخوام مظاهر سیاسی اجتماعی رو عرض لذا احتمال اینه که من کلی احتمال میدم محمود احمدی حسین یه شخصیه اصطلاح امروز ما جنجالی بوده شخصیت عادی نبوده شیخ هم در هیچ جای کتابهاش به استثنای همین دو تی که اول کتاب فهرست اسمیشان ایشون اصلا اون دو سیخطی این عنوان که ایشون یک فهرست اصول نویشه فهرست مصنفات کسی از اصحاب ما مثل ایشون انجام نداده بود خب این انجام نداده بود ایشون نرو بود در بیکا فردا همین مرداد که ایشان فهرست اصول مصنفات نوشه و ایشون میکنه بالا همیشه بعضی از ورثه بعد از صوتی که ایشان کتاباییشون وآتی زدن حالا اینا نشون میده همون شخصیت جنجالی احمد بن رفصه. تا من احتمال بیدم هم که شیخ تربیر کرده که جوان مرگی باشه درست این ظاهراً احتیال باشه ترور شده احتمالاً از تا های مصر این رو ترور کرده باشن احتیال باشه نه احترام و هر حال در این زمان که زمان شیخ مفیده احمد ابن این تا اونجایی که ما خبر داریم منحصر به فرده که یک فقلت جداگانه برای اصول نوشته. یک فهرستم برای مصنفات کسی قدرد ایشان سراغ نداریم نه قبل از ایشان نه بعد از ایشان بدیم که انسان به حال یک فهرست برای اصول در نیسته عدد بزرگی ها شده بعیده مثلا 20 و 60 و گفتم در نگه که 6 و 70 بعیده به 6 و 70 یک فهرست تو بسول در نیسته در کتاب شهر قلوده 70 شده لذا احتماله که طبیعی که من میدم این عدد 400 رو که ایشون از مفید लर्न میکنه مال مفید نیست در زمان مفید، نه مال مفید. شون عرض میکنم این کتاب‌ها رو این دسته کتاب رو نجاشی ارزش تصدی می‌کنه نه شیخ. شیخ در همین مقدار میگه هیچ‌کس در اصحاب ما فقه و اصول و مصنفات و مثل ایشان نکرده. واقعا ماش کتاب بی‌نظیری بوده. که ایشون میگه بلغه اینکه در جز ورثه کتاب‌ها رو آکرید زدن. البته مرموستان تصور فرمویدن که چون شیخ گفت کتاب ها آتش این که الان کلمات احمد بن حسیندش نقوم میشه این دوزوی ای کتاب های آتش شده است و, و کسی استنصاف نکرده از کلمونی که در کتاب شیخ ها میبانی بسید برقنی و حقیلت یعنی بسید جزمینی و حقیلت شیخ هم نقل نکرده نجاشی نقل کرده. کرده. اونم که نقل شده احراغ کت یعنی فهرست اصول و فهرست المسنفات دو کتاب و اما این کتاب موجود که اسمش از و و علم این اصول اسمش نه آمده کارا ما مثلا بیدیم که این اون کتاب های آتش شده، از توستان تعمل نبرمدن اونی که در عبارت شیخ از آتش دادن شده دو فهرست ایشانه اونی که ما الان داریم رجال ایچانه اصلا با هم بیگه کلا سهر دارم تقدر اونی که شیخ میگه، همه د برده ورده علاقه کتابه، ورنیان سخم آهدم، این مراد فهرست است و حصول فیت است مصنفاته. این غیر از کتابی که الان به اسم ابن عذریل که شما موجوده، سرش کردند که این کتاب ابن عذریل هم میشکن ورده آتیزده. نه این اون نیست. این کتاب دیگری، حالا این کشور به ما رسیده، انشالله با سطح توصیات دیگه خورشیدیگری را شروع میکنیم صحبت. حالا ایا حالا؟ به ذهن من میاده اگر کسی این حدد سنگین رو به اصول نسبت داده شده باشه داستی بات داده به ذهن ما میاد با این شواردی که از ترهیم همین ابن به یک پسر باشه این ابن غزادری یک سر، از وقتیشون زمان شیخ مفید بوده کلام مال شیخ مفید نیست این راجع به کلام معالم و قال از تبرسیتی اعلام الوران رواع از صادق من مشهوری علم اهل العلم عربت آلاف انسان و سنف من جواباتی فیلم مسائل عربت معد کتب معروب تو سنمر اصول حالا فکر که اجبابره که مزموم تبرسی نیزه تبرسی درسته مال تفرش هم نزدیق بین قومو تفرش ایشان چار ست تا اصل رو که نام برده همه رو به اجابه مسائل امام ساده نصرد داده یعنی همین کلمه اول اصل هم که از قرن ششم یواش در کلمات اصحاب معامد آن اصواری و مشکلشون همینه این تاریخ ها رو در نظر نمیگیرم اینا که این کلمه چهار زمان, زمان شهر کلیمی بودیم اصلا چهار ساد است این در قرن ششم معامده کلمه چهار ساد اص. اون وقتی یکیش ابن شهراشوبه ایشون چار ستا رو داده به امیر المؤمنی تا امام از کاری یکیش تبرسید در اعلام و روام ایشون چار رو به خود امام رو صادق دارن وقت سنف من جواباتی فی المسائل عربع معد کتاب معروفه توسما از اصول رواغ اصحابه و اصحابه و اصحاب ابنه موسا علیه السلام خیلی عجیب آبا اینم دنبالشم خیلی عجیب پس این کلمه ای اصول سهار ستایی اصول اول که در قرن این لحظ حد آمده دو جور نسبت داده شده خب طبعا تا و تنافیش هم واضحه مرحوم و سهار فرم ولا منافعات بینال عبارت یعنی جواب دادن ولا نقلن ولیسه مفهومون به هجه کمالایت با بعد مفهومون عدد هجه در ترزیر داشت گفت ده بار مثلا ده تا نام بحث نکردم تا منیش دارم مفهوم عزه حجت مترجم کنم مفهوم صابت سؤال مطرح شده انوار و مفاهیم کلا حجت نیست مفهوم داره بعدش هم بحثی این نیست که حالا مفهوم عزه حجت رو یکی گفته 400 تا از امیرالمومنین تا امام عصر یعنی یکی گفته 400 تا امام سعد درست باشه 400 تا اش ماهیت کاربرد داره. مثلا من که الله واشکر 34 تا، ان الله سزده توه اینجا نه، یعنی در نمی مونه. خب من این ساکت نیست، که وقتی محدود میکنه عدد خودش محدودیت. فرمان میکنه کنه ماید و ماهید. و بعدش هم نقطه ای نیست که حالا محکوم حجت یادن نقطه این نیست. ای نیست. ای نیست که منشه ای مطلب کجاست تعجب از مرمومه های ساق و سای جنبال تاروز رفتن اون آهاتی گفت اهدانی و مومنیتای امام مشتبه امام حسکر این آهات جوا... گفت این دو از کجا آورده حالا محکوم عرض حجت باشه یا حجت بستر این قسمته چه دلیلی ده پس اون ابن شراحب که قدیمتره ایشون گفت از اهل درمی رو می توانی چه دلیلی داریم فقط جوابات امام و سادف چارزد تاست دریگش کجاست شما آمدیم برکتر به حجیق کلام از کجا آورده این رو ببینید دقیقه خوب بسیار اون مسبت... که هم کارم مثبتی داره, داره. اولا یک اصطلاح تو بر اصول اصطلاحی این اصطلاح یمان امام صادق یا از دین فرمودن است. او حالا خیلی خوب. پس از کجا؟ این از کجا؟ خیلی کسی اول بحث مثبت اینو تا اصلاً از کجا شما ابن مرموم خاورسی از کجا گفته از چه مصدری گرفته؟ پیشگیران هستی شما حرف از چه مستری گرفته که 400 تا فقط جوابات امام صادق بالاخره اون فقط یه موضوعیه دیگه، که بذار کاربر بود زمان از زبان مفید بقوله، شلذات از ذمیر مهم این از امام صادقه. از کجا از آن تاروخ بکنیم مفروم عدده نشد این از کجا گفتن خب ما در مسادق قبل از اینا همکری از این کار نمیدینیم و از کجا این رو گفتن بعد مرمون محقق رحمت الله علیه در کتاب معتبر فرموده و روان صادقه من الرجال مایغار و اربع تالات رجل این مایغاره رو شاید مثلا نظرش به همین رجال شفت روسی هم باشه. تا با چه سه با احساد و اما اونی که ابن گفته سیزار به تقدیر من در من نیمونم چهار ازاد از خدا رحمت کنه من مستاد اون را ایشون من, من استخراج شدن رواییاتی بیسانی ترزیم آنسانه باید را هشت ها این چهار ایشون در مسادر آمه را خواسته خیلی هم. این روایات چه مقدار ارزش ادوی داره اولا ما از این کتاب میبینیم به این کتاب هم, هم میبینیم رو می حتی روایات ابن عبی عمر رو میبینیم اسم دوی اصلا اشتباه تابت نیست اسمی ثابت نیست که الان برمید و بر حضور تعلیمی من از مقاها و الافازه جمع من قفی بردرسته امام هستی امام صادق و اصمان میبره زراره و بکیر و همران و جمیل ابن سالح و جمیل ابن سراج و ابتین ها جمیل ابن ز جوانهای های اصحاب امام سازه و محمد ابن مسلم این پیرمردان پیر مردان برید و برزق معاویه و هشامه هم جوانه و عبی بسیر یکی جوانه کشنه نه خوشه هشامه و عبدالله و محمد و امران حلبی عبدالله چاپ کرده او به دلال سریع عبدالله حلبی نداره و حلوی حلوی عبدالله دلاله حلبی چاپشه و عبدالله ابن سنام و عبدالصباه کنانی و غیره من اعیان الکوزلا حتی تا من اجیبت من ایشو در غمه هفته مفرمده من مسائل یه مصنف تعبیر مرگو محفظ هلی لعربعمه مصنف سموها ها این هم خیلی عجیبه شون تا حالا تقریب این بود که اصول در مقابل مصنف حالا اصول در مصنف ها تا مصنف اینا اسمش اصول اربعمه ون هم زده به جوابات امام صادق. اعتبار سلم که این شکل اعتبار این مطلبشون. اعتبار دار. خوب اعتبار کی دار؟ خود مرگ مادر داره کیک خوب. خو اگر شدند می‌تونم هر چندش هم شرط بدم. کیم داده کجا کجایو شما توهی سنگی توجیح بکنید من یک بیچه یک مختلف رو بحث علمی بکنید شما توجیحات میبرمونم مفیدم که نگفته الآن که نداریم زمان مفیدم مال از امیر این سال مامه از کریه این که قبل از مامه خود مفید هم که نداریم این مال این از قضایزه من گفتم کسی نگفته اونم با احتمال دارد بیم احتماله نگفتم یمینم یعنی چون اون کتاب که آتیش گرده کن ورسه سوزوندن وله هم یعنی سقماعهد بود ما رو کتابی سوخته که دیمیم بحث بکنیم مثلا چند رو توی اون رو نمیدونیم کنیم اصول چند تا بوده مصنفات چند تا. اون رو که ما نمیدونیم یکر میبینیم اگر بگید اعتبار رو خدا محقق کرده سمدرم من محرم محقق اعتبار محقق چه هر بسنه اعتباری که در قرن هستونده چه از یک اسمش بوده اولی میشه ما میتونیم اعتبار بوده. بله خب این حقیقت کجا ساخته تو هوای داده بعد یه سم مقال کان من تلامزت علیه السلام فوزادا کر حسید بن سعید و افیح الحسن و بزنفی و احمد ابن محمد ابن خالد البرگی و شازان که پدر در شازان قومی ولی پیشون قومی نوشته فضل شازان نشابوریه ما شازان قومی داریم اما در این طبقه نیستیشون اشتباه کرد و ایوب ابن نوه ابن دراج و احمد ابن محمد ابن ایسا و غیران غیران من من یک تعدا و کتب هم الان منغولتون بین الاسحام دازتون علل علم غربیه خب ما برای احترام محقق چیلی نمی بگم من دو اما این مطالبی که ایشون فردا با هیچ شواهد سالیجی نمیخوره هیچ جزی از این مطالبی ایشون با شواهد سالیجی بخوره یک جای دیگه می‌ره اینکه اینها سلامند جواب بودن از امام جواب نعل هیچ کدامشون نیستن مثلا شاذان گفته شده در قیل رو بیان علی جعفر علیه السلام دربار شاذان اصلا قومی نیست احمد بن محمد بن اسا که نداره نمران احمد بن محمد بن برقی از نیامده بیرون نداره ایشون ظاهره ظاهرا رحمه الله اشتباه هم گرفتن ببین که عد من اصحابی و در زمانی و از تلامذه این دو دیگه یکی گرفته نه در زمان هر جواد هم هستن اما این معناش این که تلامذه علیه السلام منسوب ایشون را از این مطالب رو نفی فردا نه ابن ابي عمر هم از اسم ابن ابي عمر نبردن ابن عبی عمر هم و زمان ما صدخان هم وفادش در زمان امام جوابه دیویست از دن امده ای ما از داریم که من وفادشون در زمان از جواب یا از صحادیه. اما این که دقیقه هم چی شد این که مال اون زمان باشد و کانم تلامزه تایی جواب پوزده ها این که ما من تلامزه ایشان حساب کرده. این دوتا این کافران کاره صدیحی نیست حالا من نمیدونم مرمومه محقق برداتا گا ثم مقال اشتذاع بله بعد ایشون فردا که من از کتب پیش من بوده نقل میکردم فهم من اخترت تو نقل رو بله من از به حساب کلام کسایی که مشهورن یکی حسن محبوبه یکی بدنتیس یکی حسین سعید یکی فضل شازان یکی یونس نظرخانم بعد من متأخرین ابو جعفر ابن واقه صدوق و محمده نیعقوب کلگی ایشون این مقدار از ما تقدمید این از خب مطلب خوبی ولی سه خیلی گردی به واسطه نرد میکنید این سه کتاب که فضل نشازانه این بعد میفهمان در منع اصحاب کتاب این فتاقا یعنی تا اینجا به اطلاع محدثین بود این مطلب در این این شاپ جمید آمده اضافه کرده از خود کتاب معتبر مرحوم اصحابه شغلت علی ابن باوری علی ابن باوری و ابن جونه و حسن ابن عبی حقیل این زفرش خمانیه اممان داریم که پایی تخت اردن و خمان داریم که در مسخت خودش شده و المفید شیخ مفید و علم نقدا و شیخ توسی رحمه الله پسیشون یه من از در این کتاب و از اینها، از این بزرگان نمیم از روز خوبه که ایشان داره در کتاب اصول در معارض مرو محقق ذنب شیخنا ابو جعفر الهلاله به خبر الارذ بن ربات اصحابنا عسلام آقای شیخ طوسی اولین کسی است که این بحث مساله حجیت تعبدی خبر را آورده لكن انصافا در کلماتش ابهام خیلی فراوانه یعنی انسان واقعا سر در نمیاره مراد از حجیت تعبدی خبر چیه لذا ایشون خود مردم محمره لیکن لحظه به امکان مطلقه هم فه این در تحقیق یا تبین لا عمل به خبر مطلقه هم. بل به حاضه الاخبار المروی یا تعمله همه شاید نظر رو باردیشون باشه که شیف راختیم یه حجد خبر این خبرهایی که موجوده ما چون این رو رو اشعالا عرض میکنیم وجهی برای جمع بین کلام شیخ و سید قرار دادیم سید هم که میگه خبر حجتی یعنی غیر از این اخباری که در کتب هست شیخ هم که میگه خبر حجتی خصوص این اخباریه که در این کتب هست پس با هم دیگه موافقه این نردجان هست توضیح می‌خواد انشاء توضیح در چه جه دیگه از از و در ضمن الاصحاب لا ان کل خبر نرویی الهامی عمل و عملو و العملو به مثلا کاری فعالیت قوی دارند که هر خبر از علی عمل اینکه تصالون بر نفتیش باشه بر اعراض باشه حاضر لدی طبعی جنریم کلامه برمون محقق می فرمونه و نقل اجماع از اصحاب از امر به حال اخبار این اجماع در اینجا به این معنا یعنی این اخباری که در این کتب مثل کتب سمساید و دیگر من هست این اجماعی اجماع حالا این اخبار در اضافه رو کنید یعنی اهل قوم و بغدار مراد ایشون از اجماعینه نگاه نکنید احلاقون و برداشت تو مسئله خود تعارض تا آراض دارن اما اجماعیز بر این رباید عمل میکنن مراد از اجماعینه حتی لورواه و غیر الامامی اگر امامست فتحی و و کان خبر و سلیمن من المعارض و معارضی هم نداشته باشه وشتوهر نقل و اوپیه ها در کتب دائر از بینال آنلبه واضحه که پله ما هم مقطع امکی را که انسان اگر بیشتر بالتو جیمی سر داشت میشود جیمی فرکنده انسان ما یک انسجامی در کلمات کلماتشش نمیبینیم در میان عده در همون زمانه ایشان قبل از ایشان صد سال یی سال قبل ایشان خب هدیه خبر و خبر سایه و غیر سایه انسجامی هست در کلمی ایشان که نیست باز برهم محقق در کتاب و بهسوام سمت هر فهم اول العمل و به اتباع اما نقلق الاسحار که از کار ما حقید رو بکنید که به شواهد مراجعه کنند این شواهد مذهب نه شواهد اغلالی و نه شواهد اسلامی دینی به اسلامی بعد ما ذکر خبره اینو محسنی الگیم بقیه العمل و, اتباع ما و, و به اتباع اما نقلق الاسحار و اتابعه الکزلا و اذا سلمن نقلق عن المعارض و منر منکر مطلبی نباشه که بین اصحاب ما مردود منکر منکر این اونچی بین اصحاب ما فتوا به وی شناخته نشده یه توضیح به درد میکنم و معارضی همه در ارسال و روایت موافقه دفن حتی اگر روایت ضعیف بود مرسل بود عمل میکنیم اگر موافق فتواشون بود بعد فرمودن چون یه طریقه اقلال ایست و مذاهب ابو و شافعی و کلامی را از همین جرد میفهمیم با نقلی که شده و مشهور. لذا ایشون میگه و کذا مذهب و به علیه و سلام یون سوالیه به حکایت بعض شیعته سوا اون عرصلا و عصند فرمان میکنه موسیل و مصند اینا فرمان میکنه ازالم یون قل من العمه مای آرزو بود ولا قد و, و من اگر از این امور اوردن معصرم این همون مردایی است که هر تین بر اساس مرون دایمی و عادی و میاد میشه به این که اسمش گذاشتن است خبر موثق به میخواد مرسل باشه اصطلاحتون این شده در مقابل خبر جده خبر سره جده خبر موثق گنده اکثر خود محقق ادله الله واسه که جایی علما معناش اكمالت اینه به خلاف اعلام اکالا خلال صحیح رو مطرح کرده بعد ایشون مرحومه صاحب وسائل یک فهرست از مستطرفات سرائل ابن ادریف دادن از کنم در تطاب بغنه شیخ محید مثلا بر استطاب صلات یا خمسش باب و زیادات یا نواده یا زیادات ازدهی سا... از تو صدوق هم در فقیح داره بر استطاب نکان حسن طلاف بابو نواده این داره در چیز توسی ما نداریم در کتابش شاید دلیه که از کتاب های باشه منحوم ابن هم یک باب زیادات قرار داده اما آخر کتاب اون آنوان قاله مثلا آخر کتاب سلاف قرار نه آخر کتاب سوم آخر کتاب قرار آخر, آخر کل کتاب اون تمام زیادات رو جمع پیاده آخر کل کتاب یک عنوانش هم باب زیاداته لیکن چون گفته که فیلم انتظه تو و استطرفتو من کتب المشیخه, المشیخه ال... مشیخه ال... احسان اینجا مشیخه باشه میگم مشیخه اونجا که اصماع رو و تو خودش رو خودشو. مشیخه خودشیوخ هم گفته بین مشیخه حالا بفتش رو و روات و سطر اقوالا بعد ایشون نوشته حالا تا ارز این مستطرفات سال معرض که شده یاد داشت تعبیر خود ایشان خود مرحوم شیخ مفید خود مرحوم ابن ادری نسخ شناسی نکرده متاسفانه جزء یک کتاب سال اسمش نمی‌ذارم فنذاری که وقتی فن اشاره اجمالی میکنن ماروا و مسند ذکر در کتابه مسند ال کتاب داره از توصیف صریح نداره شواهد بر کتاب موجوده کتابش که بوده و منذاره که مستخفتنا هم کتاب معایت ابن همه این کتاب همه خیلی مشهور بوده در حج خیلی معروف بوده بعد نوادر احمد ابن محمد ابن نوی نفر این کتاب نوادر هم تا حقی معروف بوده البته حالا شون خود ابن ادریس آشنایی با خبر و مسانی و اسانی و طروع و اجازات نداشته اگر حالا اشتباه نکرده باشه و منذاره که مستطرتنا من کتاب ابان ابن تاقلیب صاحب الباقر و سادر علیه السلام اینه قطعا اشتباه کرده چون از این اول حدیث عبانه و مثلا بعض احادیثش با یک واسه از امام رضا نظرم کنه ما زبان امام سادر و خاطر شده قبل در تولد امام رضا این رو که قطعا اشتباه کرده گفته شده که این احتمالا عبان محمد بگری باشه که از کتاب داره اگه این چیزی که نوشته شده حواشیه کتابه عوانم شادعوانم شغله خیلی هم با همگی صفحه شون طرف احتمال داره کتاب عوانم محمد باشه اصلا این کتاب دیگری باشه عوان راوی اول کتابه این ما الان چیزی از اون کتاب نمیتون کشید بریم و منذار که مشتق نامی کتاب جمیل بن دل دراش راسته کتاب جمیل حد مشهور ده اما هر سه کتاب تیاری که فرد ضعیفیه ابو عبدالله صاحب موساواره ذو علی و این کتاب ایشان توسط تازه به تعدادی چاپ شده رسید. و منظوری که مقصد رشنام این کتاب جامع بدنتی ارثه اینجا ایشون اشتباه کرده این جامع مال بدنتی نیست این کتاب جامع بدنتی نیست مالکی عمارا نمی دونید. در حال اینجا اشتباهه. نوادرشو نمی دونون اما این رو می که اشتباه کرده. مولانا جامع بدنتی اشتباه کرده. و منظوری که مقصد این کتاب مسائل رجالی و مکار. این کتاب رو که ایشون نغرب کرده با عنوان روایت همیری و روایت نع... ایاش اعیاش بودان ایشون اشتباه کرده ما یه توضیحاتی کوچیکی با این کتاب ها سابقا عرض کردیم این کتاب مربوط هست به یکی از بزرگان قوم به نام احمد بن اخاره اشعری حالا اینا با دلیل که از تواتر البخاری بر ما بود این اشتباه کرده با اینجا اون ایشون کرده و منزلی که مقصد نام این کتاب مشیخه کتاب مشیخه کتاب معروفی بوده میشه قبول کرد تا حدی بله بعد بله. و منظه که م ردنام این کتاب نووادر مصن ایشون تعبیر کرد نووا لکن شیخ شعر نووا گفته که تصمر محمد نری محبوبه ایشون این کتاب رو میشه تقریبا قبول چون بیا غیفه تا ما ممکن است این کتاب رو قبول نکنیم میگه این کتاب به خخت شیخ ش یعنی شیخ توصی نسخه از این کتاب رسه انصاف کرده این نسخه پیش موجوده و منظاره که ماست در این کتاب من داره از روی تاریخ خوبی نه، چون کتاب موجود است، مشهور، خیلی قابل قبوله. و منظاره که ماست در این کتاب قربل اسناد کسی به محمد بن عبدالله مجبر اهمیاری، این کتاب هم الان چاپ شده، سابقا مشهور نبود، چاپ شده مقارنهش آسانه. کتاب هم ولی محمد نیست، مال پدرش عبداللهه. چند بار کردم. کردیم از ندید، عجیب, عجیب, غریبی در عجیب نیست که پیش ازیب قریبی در اسوانی زیما ازشان عجیب می‌ش. علاوه‌ی حال، کتابی به نام جعفر ابن محمد ابن سنان دهگاه داره که اصلا نمیشنسه بیشون رو از کتاب تحضیبال احکام درسته از کتاب عبدالله ابن بوکیره نرین یعنی چون این کتاب ها که این مشروع نبوده نه اعتماد نداره از کتاب عبدالقاسم ابن غولبه که کامول زیارات باشون نگاه که از قابل قبوله اون سل عالم سخوانی هم نمیشه ملان قبول بکنیم کتاب محاسن برقی چون محاسن درگر آنه چاب شده و نسخش موجوده میشه قبول کرده لیکن محاسن دردی که هم قلنا نسخش مختلف بوده و قدید زید فیه و نقض نمیدونیم که از کدوم نسخهی رو نمیترده بعد از ایون و محاسن شیخ مفید که چاب شده این هم راجع به اجمال کتاب و مستقبات ذلان واحد على الشراعه شوري وقتي فرصت بشه راجير بعد از مفصلات شوراگان صحبت این کل مصارف سرائر رو که ایشان ترخیص کرده من هم ترخیصن شرح حالش رو گفتم و معلوم شد که مثلا ایشون بله این مطلب بله ایشون حاصلش اینه حاصل حق مرحوم صاحب سا وسائل ذکر اول به کلام محقق ابن ادریس اشهادت لهاد الفتو به صحه و ثبوت و اعتماد ایشان واسطه اند این کتاب ها صحیح هستند بعد ایشون یک دو مطلبی چون نمیخوام طول بده خدای ن그ور این دو مطلب اثر مرتضی از طریق صاحب معاله نقل کرده نمیدونیم الان بله این مطلب ایشان قابل قبول باشه بعد خود مرحوم صاحب رسائل معضاله که به عبارات سید مرتضی تحملی کرده بله و سعی کرده یک رو برای کلام خودش انجام بده و باز در موارد دیگری سید مرتضی یه هرمشون وقتمون گذاشت دارم یه هرمشون کشیم رو دیگری یه روزی